نگران پشمان. دخترکش اصل چی؟ خوبه؟ تو دستگاهه ولی خوبه پونه میخواست بیاد این وضع وضع بیاد چه کار کنه؟ تا قبط نمیاری دیگه آقا جون برادرش تازه بیاد مگه کاری ازش برمیاد نامردی که زدتش پیداش نشود؟ نه هران از آگاهی اومدم به کسی هم شک دارن؟ یه کاریگر همون روز با پیجمان دعواش چرا رقم مزایده زمینو به رقیب پیجمان لو داده هستانیست بچه ما ات چنگش داره برد حالا مطمئنی کار اونه؟ نه میدونم فیلن که دنبالشه. آبا جون بابام ما یا اتتک بود خدا بیام آره خوب یادم مادرم ساعتها کنارش میشست و باش حرف میزن یکی به مامانم گفته بود فکر نکن تو کماس نمیفهمه تو براش تعریف کن و همه چیزو میشنفه میگم بهتر شما هم کار کارو کنی شاید تصویر داشته باشه ما هم حرف بزن دلم م حرف زدن با تو تعیین شد تو الان باید خونه زندگی خودتو داشته باشی الان باید دست زن بچه تو بگیری بریم به گردش اصلا دست دکتر تو بگیری بری جلو دانش کتاب بخریم آخه تو از زندگی چه خیلی دیدی بابا تو همش یا کار کردی یا مراقب من بود اجما بابا منو تنها نذار بابا من بدون تو ایک چی نیستم میشه که من خود میشه من اون سرها نزارم میخوای خسوسی حرف من منجا حرف خسوسی نداریم شما اگر حرفی داریم بفرمایی خیلی وقت بود میخواستم ببینمت اما تلفوناتو جواب نمیدادی شما به من زنگ زدی؟ بله چند بار خب حالا چه داشتی؟ خیلی خوشحال شدم که اینجا رو انداختی اما اینکاش به منم میگفتی چون میگفتم؟ در مورد اپمون دیگه همین برنامه ای که الان داریم روش کار میکنم بخشین؟ اپمون؟ آره دیگه همون برنامه از که چند سال پیش با هم روش کردیم. ایده ای این برنامه چند سال پیش مطرح شد در واقع آقای جبان مردی مطرح کردن بعد با هم برنامه رو نوشتیم البته با هم ننوشتیم شما قرار شدیم مدت دستیار من باشین و کارهای اولیار انجام بدین نزدیک دو ماه هم کار کردیم و بعدش هم شما رفتین من نرفتم شما گفتید این کار به نتیجه ای نمیرسه کلانم بیخیال شدین دقیقا همینطوره خ ببینین این برنامه با اون برنامه خیلی فرق داره. اون در حد نسخه اولیه بود، حتی قابل بارگذاری هم نبود. ولی همین برنامه است. ببخشید، من میتونم بپرسم که آقا مشکل چیه؟ مشکلی نیست. من توی نوشتن و این برنامه فعالیت کردم، و حضور داشتم. خانم شاکری، شما مثل اینکه یادتون رفته پایان‌نامه دانشگاهتون رو من نوشتم. اون وقت شما اومدی میگین که خودتون برنامه رو نوشتین؟ شما ننوشتین، کمکم کردین. شما به من پول ندادین که من پایان‌نامه‌تون رو بنویسم؟ منم صدا گرفتار بودم برای دانشجو پایان نامه می نوشتم یکیشم ایشون خب دلیلی نداره که من تو این کار کنار شما نبودم منم نگفتم نبودین حتی بابت اون دو ماه دستمزد هم گرفتین تا جایی که یادم میاد یه قراردادی هم بین ما بسته شدش که تو این قرارداد ذکر شده که شما برای من کار کردین من اون برنامه رو نوشتم خب وقتی قرارداد هست که مشکلی نیست چون قرارداد بیارین ببینیم چی بوده من حتی تموم کاری که برای این برنامه انجام دادم فایلش رو لپتوب هم دارم ما با همین برنامه رو نوشتیم من توی سهم دارم آها شما بعد چند سال اومدین از من صحب خواهی کنی آقای جوام مردی انصافا من توی این پروژه بودم یا نه ببین خانم شاکری الان اینجا چند تا کارمند دارن روی همین اپ کار میکنن چند روز دیگه اونم باید بلندشن بیان بگن ما هم شما خیلی خوب میدونید که من چی دارم میگم الان که این برنامه به نتیجه و پول رسیده من یادتون رفته حتما هم یادتون رفته که می‌گفتین این عفت زندگیمون رو تغییر میده و چقدر به امید میدادین. ولی این مملکت قانون داره این طوری نیست که بشه حرف کسی خود خودم نگهدار. تو که بفتیم اقش کار خودت؟ کار خودمه یه مدت کوتاه برم کار کرد و دستمازشو گرفت و رفت شرح و کامل تو قرارداد نوشته شده اگر قرارداد قرصه مهکمه نوسته باشیم میتونه و از همون درد سر برس کن نمیدونم با قرداد یه بار دیگه ببینم باید با یه پولی رزش کنیم ما الان تو حزینه های خودمونم موندیم حالا پس فرده پوری با مید تو حساب چقدر بهش بدیم که دست از سرمون برداره هیچی هیچی نمیشه که بعد رازش کنیم رامین اینجا منظورت اینه که بهش باج بدیم اون شو گرفته بیشتر زینم حقش نیست ام. اگه بره شکایت کنه و دادگاه به تا تقیین تکلیف اب اجازه ی نداره چیکار کنیم نیازی به باج دادن نیست من میگردم رو پیدا میکنم هیچ مشکلی هم پیش نمیاد هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. بروخ این تبلیت من نمیدیم کجا میری؟ کار دارم یک ساعت هم نست اومدی برای شورت خوبه زن میزنم جواب نمیدی دفتر نمیای نایمدی میخوایی بری یه کارای عقب افتادهی دارم باید انجامشون بدن چه کارایی؟ خانوادگی چیز چیزی خیلی مهمی نیست خب به منم بگو پره شادی سر کارش مشکلی پیش اومده چه مشکلی؟ رئیسش رو زدن تو محل کار الانم تو کماس کارمنده هرمشه میبرن ازشون پرسجون میکنن میرن آگاهی و میاد باید پیشش باشن واقعا؟ تو با سعی می نامد با ها؟ آره. بهیم اگه کار می تونم بکنم بمبی کو. نه ممنون کار نیست. من برا خداحافظ. خداحافظ. سامانم میکنم ببینم اگه میتونی بیا به این عادیسی که ببینم. سلام ماما خوبم مامان سامان بهم امزهر زد میخواد منو ببینه آقایی گفته بود اگه خبری ازش شد بهشون خبر بدم برای من جراتشو ندارم شما باید چی بیای نباخ چی میخوای بهش بگی؟ مو من خودم میره؟ با شما من مادر شادی هستم باید همین الان بدم به دست پلیس. من که نکردی؟ کاری نکردی؟ با عصبانی همه این اتفاقات توی پیجمان میدونه چرا این اتفاق افتاد پدرشم خبر داره تو از اونا کی نداشتی؟ برای چی پای دختر من کشیدی بسر؟ برای چی با احساسات بچه من بازی کردی؟ فکری شهر هرته؟ به زنیا فرار کنی؟ بچه مردم افتاده گوشه ب به خاک پدرم خون اون گردن پدر پژمانه من پجمانو نزدم بابا اون شب استن برنگشتم شرکت. من اگه میخاستم پجمانو بزنم همون روز اول میزدمش انقد ثبت نمیکردم مجاهده برگزارشه ماایسرا را از چنگش دربیارم خانوم من نیستم آدم زدم پس بره چی فرار کرد؟ باز اینكه همهشی ور منه باس من تک که من خرجلو ده نفر آدم باش کتکكاری كردم حلان تکتکش و میرم شهادت دیدم كه من زدمش خانوم من تا مخوام صابت كنم بیگناهم میپوسم تو زندون من خیلی بدبختی کشیدم تو زندگیم زیر بار زندگی نمیدم نمیتونم برم زندگی شالی کجا؟ نهیمه با شما میخواست بیاد من نذاشتم من اجازه نمیدم دخترم رو بدبخت کنی من رو صورتی ناراحت شد ناراحت سلام مادر سلام خواهی صبحانی احوال شما خسته نباشین ما دوباره دست پر اومدین که دیگه این کمترین کاری که آدم میتونه برای مادرش انجام بده شما که خیرات میکنی چرا خودتون نمیبرین بده خیریه آقا. هم شما الان بود حتما رفته سر نماز با من شما الان صحبت کرد سلام برسونیم سلامت باشید شما خرده منو خیرات میکنین؟ تا وقتی سحمل ارث این بچه ها رو ندی هیچی ازت قبوله میکنم چند بار بگم؟ باید یکمی صبر کنید چقدر صبر کنم؟ دو سال پولشون دسته خب بهشون گفتم که دارم با پولشون کار میکنم باید سود و زیان پولشون رو بهشون بگی مادر من الان دلار اومده پایین به صرف نیست بفروشم مگه نگفتی فروختم کی گفتم دروقو که هم حافظه است تو سیرمونی نداری من تا تکلیف زندگیم با رونا روشن نشه هیچ کاری نمیتونم بکنم دیگه حق نداره اسم این دختر من بیاره سلام مهدی جان خوبی مادر ببین یه مقدار خارباره بیا ببر برای خیریه نه فردا صبح نه الان بیا ببر نمیتونم دیگه جابجاشون کنم دستت درد نکنه ببین مهدی جان اون دفعه داشتی تعریف میکرده از یه وکیل گفتی کارش خوبه آره آره برای یکی از آشناها میخوام مشکل خانوادگی داره میخواد مشورت شمالهش رو به هم میدهی؟ یادداشت الان میکنم بگو خوب خوب دستت دردن پس یادت نره بیای اینا رو ببر مادرم ممنونم خداحافظم بعد پدرش میگفتی که کار تو بوده رفتم بگم ولی نتونستم بعد خدا خیلی عصبانیه همش منتظر نشسته داره به پسرش پیداش تو حسابشو برسون وقت رفت آقا پسرش دو تو کماست توام وارش جون بعد بریم با صدر این قضیه رو جمع و جورش کنه اینجوری به نفسته‌ چه جوری صالح جان اولشم برم بگم آقا جا من عذرخواهی میکنم زدم پسرتو به این روز انداختم یه حرفی میزنی ها خب های چیکار کنی تو هر چی بیشتر این ماجرا رو پینت میکنی این جورم تو داری سنگین تر میکنی آقا برو باش حرف بزن بگو من بلا فاصله رسوندمش بیمارستان هر کاری از دستم برمال انجام دادم بذاری خود نرم بشه نمیدونم شاید اگه فرد و پیش بیاد بهش بگم مش می دیدم گیرم. آرش جان، دیشب یه آقایی اومده بود اینجا. کیفو تو پیدا کرده. بهش گفتم کیفو بدین آشنا من بهشون میدم. گفتش نه. باید حضوری به خودشون تحویل بدم. شماره‌اشو گذاش که بهش زنگ بزنی. اینجاست چه سلام شما کیفه من پیدا کردی؟ بعده آره. کجا بود کیفم؟ تو کدوم خیاب آره اش داری دنبالی چی میکردی از تو تمام خونده رو به هم قرارداد کاری قرداد کاری بایی هر چی هرچی میگردم پیداش نمی کنم خب یه خورده آرومتر بگرد پیداش میکنی سلام سلام مادر این چشه این سامان زن زد با شادی قرار گذاشت چرا به من نگفتی؟ به تو بگم که شر بشه من فقط میخواستم باش حرف بزنم حرف این همونده ماده یعنی که همینجوری گذاشتیم بره؟ نه من خودم قبلش با پلیس تماس گرفتم اینجوری اصلا برای شادی خیلی بهتر شد گرفتنش؟ نه فرار کرد نمیدونم چکینه ای از پدر آقا پیمان داشته که میگه همه این کارو رو برای انتقام کرده. انتقام از پدر پجما آره میگه باعث بدبخی مرگ پدرش شده بخواد که پدرشم قسم خور که پجما نزده یه برای خودت درست کردی مگه چی شده بابا الان ندا آمده سر میز صبحونه سلام داده همه جوابشون دادن به تو یعنی دیگه نمیخوای حتی جواب سلام زن تو بدی مثلی که یادتون رفته بابا میریش رو گذاشته اجرا بقیشه چی این کار رو میکنه شما یه نفر رو مثال بزنید تو بر ما که این کار کرده باشه شما یکی بگو که خونه و زندگیشو سر کارش از دست داده باشه. چرا می تقصیر رو می گردنه گرد خودت هم ببین دیگه زنی که شوهرشو رو دوست داشته باشه از این کار نمیکنه دوستت داره که داره این کارا میکنه آره برای زندگیش می ترصد اگه زندگی اون براش مهم بود یه کم به فکر بچه بود اونم بچه میخواد مونط میگه رو شرایط جور بشه نظر کار به دادگاه بکشه باش حرف بزن او مع از اون شرکت بیرون نمیاد پولم ندارم که خونه بگیرم دیگه حرفی نمیمونه حداقل دقل بگو چجوری میتونی مهریش رو بدی تا من رازیش کنم آخه فقط مهریش نیست که تو منش هم میخواد. هیچ جوره هم کتا نمیاد تو امین چیکار کنه؟ کنی ها به خودت بیاد تا دیر نشده این اختلاف های یواش یواش جدی میشه از این جدیتر؟ از این جدیتر درخواست طلاقه چی شد شدون همه اشخاصیدی؟ همین فردا بیاد بگه طلاق می‌خوام، تو می‌گی باشه همین باشه همونوزم دوستش داری؟ یه فکری بکن تا چه کار کردی. شرکت شما هم اونجا که کیفو پیدا کردم شما مطمئن اونجا بوده چون نه اونجا نبوده لابد بال زده و خودش رفته اونجا من نمیدونم کجا گمش کردم بهتمنها یه جای جیبم افتاده و یکی برش داشته بعدش هم انداخته شرکت ما آره خوب ممکنه پولاشو برداشت و بعدم انداختتش اونجا نه نمیشه با این اصاب کیف مال شما نیست چو مگه نگفتی عکس من توش بوده وقتی میگی اونجا نبودی یعنی کیف مال تو نیست. وقت بدمش دست پلیس آگاهی. به پلیس چه رفتی داره؟ آخه جایی که پیداش کردم یه اتفاق خیلی مهم افتاده. چه اتفاقی؟ یکی به قصد کشت زدم. الانم تو کاماست. خب به من چه رفتی داره؟ خب آخه من کیفو همونجا پیدا کردم. درست شبه همون اتفاق. خب میگم من نمی دوم کیف اونجا چی کار می کرده میفهمی؟ حالا چرا عصبانی میشین؟ میبرم میدمش راسته پلیس آبایی خوبه ببین من نه وقتشو دارم نه حوصله دارم که بخوام به ثابت کنم من اونجا نبودم. آره این روزا همه درگیره هم. شما وقت نداری یکی پول نداره. همه یه جورایی گرفتاری ولی... ...با یه مشتلقه اساسی میتونی مشکل حل و فصلش کنی؟ سی توان چطور. سلام جلالجون. خوش آمدی. چرا بیرم. چی شده. نبیرم برم زنده. نه میدونم. این هم سر روشتی پسایی که عهد دوا درگیری نبود خونه گفت یکی زدتش پیداش کردم؟ <تصفح> نه به یه نفر مشکوکن که اونم فراری کار <تصفح> کارگرش بوده <تصفح> میدونی اصلا دواسر چی بوده؟ زمین مای سرالو بخواستم بفروشن برای همینم به مزایده گذاشتنش پژبوندارش می‌خواست پرنده بشه. ظاهراً کارگر قیمت پیشنهادی پشمانو به رقیبش گفته. اون برنده شده، پشمان باخته. برای همین درگیر شده رو دعوا شده. حساب گذشته رفته، ولی میگن آخر شب برگشته و البته حدس میزنن قاسم می‌دونی دقیقاً این دعوا چه موقعی بوده؟ چهار شب پیش. 4 شب پیش؟ آره. 4 شب پیش، اجمام به من زنگ زد. حدود ساعت 6 و 7. راجع به تو میپرسید، راجع به گذاشتت. راجع به گذاشته من نمیدونم. میپرسید. بابا اون قبلا در حق کسی کاری کرده. گفتم چرا از خودش نمیپرسی؟ گفت نمیخوام داراتش کنم. تو مطمئن نشم نمیخوام حرفشو بزنم حالا چرا این را از تو پرسی؟ نمیدونم این پسر فرایه کیه؟ چرا باید رقم مزایده رو به رقیب داده باشه؟ کارگرشه اسم و فامیلش را تو رو گفته آدرس و شما تلفنش هم بی خودیه راست نیست کجا؟ میخوام برم یه چایی برات بریزم بشی بشی خدا می‌رسم. نه خیلی جرات می‌کش. ای داره. یا پادو بالا؟ اینجا؟ نه کشتن اینجا. دفعه آخر که اونا دخیله، پس من گفتم یه برات بکی. گرفت. یزی بهم نگفت. جا؟ هر هر هر. خوب سرک. حال تو یاوش می‌داری؟ نمی‌روم چیکار؟ شرم داده. دشمنی شرمنده رفیق. کارمون رو نمیدازم چرا؟ ساعت پنجه تومن که خیلیه خبم ساعت تومن ندارو بهش بده از رو همین پول؟ از کجا بیارم خب بهش بگو یکم صبر کنه قبول نمکنم یومی رو حکم توقیف هم همهالو میگیره میان اینجا تمام سکسیما رو برندارم میبره خب بگو خود خود بهش میدی مگه من باش حرف بزنم فایده نداره تا پولوشو نگیره برکن نیست بازی مریش همه خیلی خوب ولی بدون باز کارا اینطوری پیش نمیره ممکنم مجبور شیم گوزارو بیاریم یعنی کیا بهای کامیار اینجا باز نشه ها رونا پس بروشیم ای نداریم من بهش میگم پولو بذاره ولی اصلا اینجا نیاد آقا من نمیخوام دیگه این آدم تو زندگی من باشه گفتم بهت کار از زندگی شخصی جدا کن رامین کامیار شوهر سابق من بوده آرش نام زدمه نمیشه اینا رو از کار جدا کرد اما ما به این پول احتیاج داریم ببین هر جوری شده من میرم طلا وسهکار از بابا میگیرم ولی نوزارم پای کامیار اینجا باز؟ سلام سلام سلام سلام کجا؟ رونا؟ چی شده؟ سلام سلام؟ چش بود؟ چه احجاب شما اومدین بام اومده من سی تومن ریخته بودم تو سای مشترک گفته بودم هر با اومد پسش میگیرم الان نمیتونم به بدم آراش اگه سرد و پنجه تومن نگرفتیم این این که تو همش به هم ریخته است خب اگر الان دهتمانشو بردارم لازم دارم. باشه. ازین قرض دوباره دی. نه پیداش نکرده. ارایش. کشته کش ننده زیا خیلی مهمه. خاله پیداش. الو ندا. سلام یکی دو ساعت مرخصی بگیر کارت دارم ببا شما بالاخره با ازدواجه منو آرش موافق هستین یا نه سلام سلام من حرفی زدم نه ولی عملا نمیذارین کار پیش بره من کاری به کارتون ندارم منتظرم ببینم شما چی کار چه جوری؟ دست خالی؟ دست خالی؟ 20 میلیون پول اول کار ریختیم تو شرکتی وامم دیگه وام دیگه میخوان چیکار کنیم بابا اون وام و رامی باید بده به نیدا دیگه چی واسه ما میمونه شما شیش ما به ما فرصت دادیم ما باید چیکار میکردیم دخترم من مسئول به سرانجام رسیدن کار شما نیستم شما باید خودتون تلاش کنید من هم سر و قرارم هستم خب تلاها هم هم که گرفتیم نمیزنیم باشگار کنه. قرار نیست برای یه کار دختر پسر من هست و نیستشونو بذارن یه نفر یه ایده ای گذاشته ما قرار بوده پول بذاریم کار حمایت میخواد من قول حمایت ندادم خب تلاها ها به هم برگردونیم مال منن من دیگه اجازه نمیدم شما ها یک قرارم خرج کنیم یه تیکه از اون تلاها هم به میدم من میدونم شما به چی فکر میکنیم نمیخوایی نارش موفق چون ازش خوشتون نمیاد چون موتور سوار بوده چون سطح زندگیشو قبول نداریم. ولی ما هر کاری میکنیم که موفق شیم چه طور بیم برگونه شما کاری داشتی میگفتی من خودم انجام میدادم خودم باید بیمه ده بیمه دیجا اما پیجمان چطورم احتر ما که شب و روز و دعا میکنیم خدا با حسابانیشو لعنت کنه. کاربار چطوره ای بده نیست ولی دل و دماغ که نداریم یا رو برامیم آمده پس حسی های غربیر هم دفعه بعد که اومدن به نشون برن هنوز که چیزی معلوم نشده غربی شرقشو بعد مشخص میکنه آقای بحران سلام علیکم سلام علیکم از چیندن این خبر خیلی ناراحت شدم حالش چطوره؟ هنوز که بهتر نشده ایشالا زودتر خوب میشه برمیگه ایشال این... نامه رسمی مزایده است تا سه هفته دیگه اینجا باید تخلیه بشه ولی من پیشنهاد میکنم شما بمونید به کارتون ادامید اینشالا آقای شریفی هم که برگشت میشین بیشتر راجع به همکاری و اجاره حرف میسین عجله نکن نبینیم خدا چی میخواد عجله نمیکنم به خدا خود اچیم. خیلی تاریخش. <تصفح> شما به این اداره شکایت کنید بلاخره تقلب کرده دیگه تا خود آقا پیجمان نباشه شکایت اصمینست نیست. یه اعتراضی بزنید که جلوشو بگیرن تا سر کله این پسره پیدا نشه زیر باری این دوز و کله کار نمیره اعتراض ما هم دیفایده است نه آقا اینطوری نیست بلاخره جلو کارشو میگنم تا باید ببینیم چی میشه هم تا آره خوب نشه. ایش کاری نمیتونم بسوزم هر طور سلام میذنین من میرم پای گاییدیشین سلام بویجوز شادی خانم بله. من شنیدم تو دعوای پژمان و این پسرک تو اینجا بودی درسته بله هم بدونم دقیقا این پسرک به پیشمان چی گفت چجوری سار کلش اینجا پیدا شده هنوز معلوم نشده که اون شب برگشته باشه آقا پیشمان زده باشه نمیدونی چه کاره بوده برای چی اومده تو فرم استخدامش نوشته بود کارگر ساختمون بوده میگم نکنه آدم این مردک بهرامی بوده به دستور اون اومده اینجا این کار کرده شما برو به کارت پرست این ارتزان بگوی ماشین برای من بگیره سامان تو درواش به آقا پژمان یه حرفای در مورد شما زد به آقا پیشمان گفت برو از پدر بپرس که چرا باز این کار کردم پیشمان خیلی خوب یادم نمیاد بری خیلی از شدن عجی. تو آرامش بامن من که تو به اعتماد نداری. یعنی ازت کار من توی این برنامه سهم دارم. اگه سهممو برم ندی از من, من نمی‌فهمم شما دو چی همه اون وعده و وعدهایی که شما تا برای من دردسر درست نکنید از سر من برن. قرصو داشتین همجو پر کردیم من تغلب کردم. نکردی؟ برش برای بازی چی خودت نمی‌کنی؟ من دوست انتقام منو از برچند. تو یتاری آه در جریان بود. زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یه بارون آرید دستای خون پر از گل داوودی شد ماه از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونه شل شدن گفتم این یه ماجز است شد به آسمون همه ستاره دونه دونه گل شدن مهربونی ایشت نازنینی ایش آخریم تکه یین جورچینی ایش بونی ایش نازنینی ایش آخریم تکه یین جورچینی ایش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 مهربونی <میترق> ایش نازنینی ایش آخرین تیکیه این جورچینی ایش